من زندم هنو سانیه ها میشه لحظات زندگی بی خیالی سیر میشه توی 24 ساعت فقط رفت فقط تفزدن از همه خوشی های کازبه جالبه بدونی که باسه گزروندن نازمه بدشانس بودن میدونی که سخت نه پس تاس جوشیش میاریم رو تخت نه از زندگی درود بیشتنی سخته نمه خونه یه ما فکر به آسمونه شبه لباسامون چون مربوط به سبک خاصمونه بده ننه باباها وقتی ما رو میبینن خوش میدن ولی بچه هاشون بازم با ما دم خور میشه خلاف سباکه ولی تا اول فی روشن ملت میگه کلی طرفدار دار پشتنه ولی احتیاجی نیست کسی باشه همراه مثل وقتی که شروع کردم تا تهش تنها هست بیخیالش باها میخوریم و میکشیم و بیخیالش باها میخوریم و میدونیم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 خارج واره شو دیگهو به راه تو هم یه یهو برخ شو وارد و خارج و یهو به خواهش بگو بی خیالش از فکر بی خیالش باها می‌خوریم و می‌کشیم و بی خیالش باها می‌خوریم و می‌کشیم چه بستوره مشکل و پس تو فقطو بشیناره بس بگو بی خیالش بس بگو بی خیالش باها می‌خوریم و می‌کشیم و بی خیالش باها می‌خوریم و می‌کشیم که بسیاره مشکل و تل میشه فقطو بشیناره بس بگو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 پخو بزنه به سیگارش بس بگو بسیاره مشکل و حل میشه خود به خود بی خیالش دوست داری تبدیل بشی به یه عوضیه لات احساس تو بکش و لهش گنه عوضیر پا. پا الان دور و رکس شده برانه ها باخت میدن حالا گرگا در میرن و بره ها شاخت میشن افشب پوله دو دست تو با کیول میدی ایمی نداره دارش تا دا وقتی شاخی زندهی اون که سرش با این بود زیر دست و, بکش و بزنه از پا میم بس کو بیخیالش، به همی خوری مو میکشی بیخیالش، به همی خوری مو می دونی که بسیاره. بوش یه لودال میشه باستو بسیناره. بعد بس کو بیخیالش، بعد کو بیخیالش، به همی خوری مو میکشی مو بیخیالش، به همی خوری مو می دونی که بسیاره. بس بس بوش یه میشه باستو بسیناره. بعد کو بیخیالش بعد کو بیخیالش به همی خوری مو میکشی بیخیالش به همی خوری مو می دونی که بسیاره بوش یه لودال میشه باستو بسیناره بعد کو بیخیالش